سوره انسان هل أتی علی الانسان من الدهر لم يكن مذكورا الله است بهراستی زمانی طولانی بر انسان گذشت و او چیز قابل ذکری نبود ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و مورد امتحانش قرار دادیم و آنگاه شنوا و بینایش نبودیم حقیقتا انسان را به راه نجات راه کردیم خواه شاکر باشد، خواه ناسپاس. و ما برای کافران زنجیرها و گلها و آتش سوزان تدارک دیدیم اما نیکان از جا میخواهند نوشید که تعم آن با عطر خوشی آمیخته شده است بندگان خاص خدا از چشمه می نوشند که هر جا به جاریش می آنها به نظرهایشان وفادارند و از روزی که عذابش گسترده است میترسند لذا از طعامی که خوشایندشان است به مسکین و یتیم و اسیر می دند و میگویند ما شما را به خاطر وجه الله اطعام می کنیم و از شما انتظار مزد و تشکر نداریم ما از پروردگارمان در آن روز تلخ و سخت قیامت حراسانی خداوند نیز آنها را از شر آن روز سیانت می کنند و آنها را در حالی که با تراوت و شادمانند ملاقات می نماید بدانید خدا پاداششان را به پاس صبر و استقامتی که داشتند بهشت و حریر داده است در آنجا به تختهایی تکیه دادم. نه حرارت را آفتاب میبینند و نه سرمایی سایههای درختان بهشت بر سرشان افتاده و میوههایش کاملا در دسترسشان است به گرد آنها ظرفهایی از نقره و قدههایی از جنس بلور میگردانند جامهایی از نقره که آنها را به اندازه مناسب آماده کردند در آنجا از جامهایی سیراب میشوند که تعم شراب آن با زنجبی آمیخته شده است و نیز از چشمهای بهشتی که نامش سلسبید است بر گرد آنان نوجوانانی جاودانی به خدمت می گردند هرگاه آنها را ببینی می پنداری مروبارید پراکنده هنگامی که نگاه کنی آنجا را پر از نعمت و ملک بزرگ میبینی. بر اندام بهشتیان لباسی از حریر نازک سبز است و نیز با دیبای زخیم و با دست بندهای از نوره آراسته شدند و پروردگارشان از شراب تهور سیرابشان می کند. این پاداک شماست بیشک تلاش شما مورد قدردانی قرار می گیدند. ما قرآن را بر تو نازل کرده ایم پس در انجام حکم پروردگارت صبور باش و هیچ گناهکاری از آنها را اطاعت مکن و نام پروردگارت را هر صبح و شام یاد کن و اذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا و من اللیل فس له و لیلا طویلا پاره از شب خدا را سجده کن و زمانی طولانی از شب او را تسبیح گوی اما اینان زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند و آن روز سخت بیامت را رها کرده و پشت سرم داختند ما آنها را آفریده ایم. و ما پیوندهای میانشان را محکم کرده ایم. و اگر بخواهیم به جای آنها قومی همانندشان بیاوریم این یک اندرز است پس هر کس بخواهد میتواند راهی به سوی پروردگارش انتخاب کند شما بجز آنچه آنچه خدا خواسته چیز دیگری نمیخواهید بدانید خداوند آگاهو حکیم است هر کس را صلاح بداند به رحمت بیکرانش وارد می کند حالان که برای ظالمان عذاب دردناکی مهیه کرده است یدخل من یشاق فی رحمت و الظالمین اعد لهم عذابا صدق الله العلي العظيم راست گفت خداوند بلند مرتبه از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و و